بپرسید کس را که بیدارتر، پسندیده تر مرد و حشیار چون این داد پاسخ که دانای پیر که با آزمایش بود یادگیر وند و خرد چنین برتران میشه برنگرد. با سلام و از ادب خدمت شما شنوندگان عزیز راژیو و فرهنگ و برنامه پنجره‌های های روی ماهتاب من حمید زیزو هدایتی یاد خستم و در خدمت استاد قیون جنیدی هستیم مثل هر یک شب شب و داستان‌های شاهنامه را ایشان برای ما می و خوانند کشایی می‌کنند. سلام از می‌کنم استاد شبتون بخیر. درود بر شما روزگارتون خوش. و برنامه امشب ما نبرد پهلوانان هست که استاد اعلام می‌کنند رویه چند صفحه چند جلد سوم فکر میکنند باید باشه دفتر سویم رویه چهلو پنج رویه چهلو پنج پس شما که با ما همراهی می‌کنید، شاهنامه ها رو باز کردید اگرم باز نکردید فوری بیایید باز کنید و بدانید که نبرد پهلوانان هست این اعلامیش کردیم دفتر سوم شاهنامه هست که بیرایش آقای دکتر فریدون جنیدی هست و عرض می کنم برای شما تلفون های برنامه رو 220-485 220-485 220-588 دو سفر 220-588 دو و شماره پیامک که و سی هزار و و ما چهر آغازین تونو من بخواستم با صحبت آزمایش شد و امتحان گفته در که انسان هر چقدر که دانا باشه هر چقدر زمان برو گذشته باشه باز باید آماده باشه که چیزی یاد بگیره بل. با دانای پیر که با آزمایش و وزیاد گیر نباید که انسان با خودش بیانده چیزی که خب من بنده کافی آموختم، دانا هستم، پیرم، ازمان برترم و دیگه نباید چیزی بیاموزم. این آزمونش در طول زندگی؟ در طول زندگی. حتی گاهگاه ممکن است از یه کودک چیزی بیاموزه. این آمادگی رو باید همیشه داشته باشه که بیاموزه. فکر نکنی که من بستمه همه اصطاد شدن. بله. و شما رو دعوت میکنم که پهلوانان رو نباید داستانه شاهنامه رو درباره نبرد پهلوانان بعد از شنیدن موسیقی که میشنوید و آقای دکتر استاد فریدون جنیدی برای ما خواهند خواند بیاری از آن بیاد داشته باشید که هومان برای خواستن نبرد به نظرانیان اومد و چون کس قاسخ نداد بازگشت به پیروزی و بیژن از نیای خودش دستوری نبرد خواست و به دنبال او رفت و به او گفت برگرد منطقه هومان گفت چون شب شده بریم به نشکر خودمون پگاه فردا بایدگر خواهیم جنگید این اونجا سپیده چون کوخ سر بردمید به بود دامن تیر شب ناپدید هومن هومان بیامد چون گرد بدان تا به ربیجن به جوید نورد به هومان چون این گفت که بادسار ببردی زمن دوش سر یاد دار میگه که تو من دیشب آمدم به نورد تو, تو گفت تو گفتی شب برگردیم به اردوگاه خودمون سر خود تو یعنی از من بردی. خود نجات دادی چون این داوت پاسخ که امروز گیو بماند جگر خسته بر فور نیو منطور که تو رو میکشم و پدرت گیو جگرش خسته میشه از کشه شدن تو بگو گفت بیژن که تا سخون کجا خواهی آهنگ آورد کن بر جنگی سواران جنگ یکی برکشیدن چون سنگ تنگ تنگ اصب اون چیزی که زین رو به اسب محکم میکنه بلکه این نبر باید زین محکم باشه همون زیر شکم, همون زیر شکم بس بس بس برای بر اون جنگی سواران جنگ یکی برکشیدن چون سنگ تنگ چون تیران چه بود اندهان داختند همیدون سوی نیزه دست داختند این آین درست نبرده که من چند بار اینجا اشاره کردم که نبرد درست از اول با تیلندازی آقاز میشه بعد نیزه، بعد چمشیر، بعد قرد، بعد خنجر آخر اگر زنده بمونن به کشته میرسه اون دو نفر که میخوند دو, نفر... دو تا پهلوان این... که میخوند البته در حقیقت دو سپاهه که دو سپاهه که پهلوان میکنند چوتیران چه بود اندرند انداختند همیدون سوی نیزه دست آختند چپ و راست گردان و پیچان انام همان نیزه آب سنام زرزورندر آورد شد لخت لخت نگر تا کرا روز برگشت و بخت البته این در نمونا ها همه همطور مده که من پیشنهاد دادم که یکی رو از ایشان نبرگشت بخت چون هنوز کسی کشته نشده این پیشنهاد من برای بیروش شانومه دوباره میخونم زورند را آورد شد لخت لخت یکی را ادیشون نبرگشت بخت دخانشان همین از تبش باز. مانده باز با آب و با آسایش آمد نیاز پس آسوده گشتند و دم برزدند دم برزدند یعنی سفر کردن. هنوز در تاکیزان میگن دم گیر دم گیرید؟ اندکی دم گیرید؟ شنیدید شما؟ بله بله یعنی سب کنید سامور کنید, کنید. کنید بله پس ها سوده گشتند و دم برزدند بران آتش تیز نم برزدند. سفر برگرفتند و شمشیر تیز بر آمد خروف راست خس. به کردار آتش پرنداوران فرو ریخت از دست دابران. یعنی شمشیر پرندابر مخصوصی که پهلوانان به قدری در کار شمشیر تمرین می‌کردند که می‌تونستند در هوا یک موی نازک ابریشم رو هم ببرند یعنی قدری دیگه این دست حرکتش تیز باشه که سرعت, سرعت که ابریشم رو یعنی یک تار ابریشم رو ببره وقتی که این طور شد شمشیر اون اشخاص رو نمیدونم پرنداور یعنی پهلوانانی که اینقدر با سرعت میزنند و شمشیرشون تا اونجا تیز هست که بتونن به یک تار عبر شمران حالا میگه که به کردار آتش پرند آوران فروری از دستگون د آوران. یعنی شمشیر خواستش اینه که با اینکه برترین بلترین جنگ افزار هست در جنگ اما خیلی زود با برخورد به هم یا برخورد بر سپر و خود و زره همورد میشکنه شروع میکنه به شکستن اینجا به این اشاره میکنه که دونه دونه شکست و تیک تیک افتاد و از دست اینها ریخت شمشیر. از شمشیر پس از بر آن برنهادن کار که زور آزماینده کارزار. زار زنی روی گردان دوال رکیب گسستن در آوردگاه که آخذ چون میدونید که این رکاب برای نشستن یک کس هست چون بخوان که روی از کشتی بگیرن هر دو باید پا رو رکاب فشار بیان یعنی بایشتن در حقیقت چون اگر روزین نشسته باشن با هند... باید کشتی بگیرن با... با... زین بشینستن با اندک اتکان ممکنه بخورن زمین حتما باید بایشتن خب حالا دو پهلوان رو رکاب های خود شنیستن و به زور میارن دو برابر میشه یعنی فشار سنگینی اونها دو برابر میشه بنابراین دوال رکاب ها اینها میگسل سنه روی دردان دوال رکیب گسستند در آقو وردگاه از دهید. همیدون نگشتند زسبان جدا نبودند یک بردگر پادشای یعنی ایش کدوم دیگری پیروز نشد. اوزان پس به دستوری یک برفتند پویان سوی آب خور. به خورد آب و برخواست ویژن به درد زند دادار نیکیدهش یاد کرد. بدان خستگی باز جنگ آمدند. گرازان به پلنگ آمدند زبیجن فوزون بود هومان به زور هنر عیب گردد برگشت خور وقتی که گرزش چرخ دگرگون میشه هنر و جنگآوری آوری انسان ها ممکنه که تبدیل به کم نیرویی و عیب بشه هرگونه زور آزمودند و بند فراز آمدان بند چرخ بلند یعنی هنگامی که چرخ مقدر میکنه که هونان کشته بشه زهرگونه زوراز مودند و بند فراز آمدان بند چرخ بلند گرفتش به چپ گردن و راست ران خم آورد پشت هیونه گران برآوردش از جا و بینها و پست سوی خنجر آورد چون باد دست فرو برد و کردش سرستند جدا فکندش به یکی اجده ها غلطید حوبان به درون همه ده شد سر به سر جوی خون نگه کرد بیشان بدان پیز فکنده چو سر به سهی بر چمن شگفت آمادش سخت و برگشت زوی سوی کردگاه جهان جان کرد رو که ای برتر از جاگاه و زمان ز جان سخونگوی و روشند به کین سیاوش برید سر به هفتاد خون برادر پدر یعنی فرزندان گودرس که اموهای من بودن در جنگ های پیشین کشه شدن اینجا مهم راستگوی یک پهلوان ایرانه که خودی ویژن جنشه افتاده میشه از این که توانست بند چرخ بلند او رو پیروز بکنه و راستگوی گزارندگان شاهنامه است که همه این رو ابراز کردن که هومان از بیژن به زور بود اما گردش چرخ ممکنه که یا گردش خورشید ممکنه که هنر رو تبدیل بکنه. اما چون بوریدن سر کار درستی نبوده میبینید که بیژن نرو میکنه به کردگار و میگه که این کار که کردم برای کی نیستی بود که سر او رو همچنون سر و سرند بوریدن. و هفتاد اموی خودم یا بردر بردر خودم که در جنگ های پیشین در نبرد با تورانیان کشته شدن بله چون بیجن نگه کرد از آن رعض و نبودش گذر جز به توران سپاه ببینید اگر دو پهلمان از دو سپاه و بخوان با هم دیگه جنگ بکنن جاشون قاطعا میان دو سپاه را میگیره اما اینجا ببینیم که در پشت سپاه توران این رزم انجام شده و این یکی از رمزهای خیلی بزرگ شاهنامه است که من در کتاب داستان ایران قاهم گوشد که چطور میشه که جایگاه نبرد اینا پشت سپاه توران قرار میگیره اینجا شد... نمیشونی بفرمایداری بخشیشون نبرد دو تیره ایرانی و تورانی هستن که به پیروزی تیره ایرانی یعنی بیژن میگه انجامه و اینا هم کن بیان بیاری ایران یا از پشت سپاه تورانی یا از کنار سپاه توران بعد باید اونجای نبر اتفاق بیفته نبر اتفاق افتاده بل. به پیروزی میخواد بیان به یاوری بقیه چو بیجن نگه کرد از اون رز و راه نبودش گذرد جز به توران سپاه به ترسید از انبوه مردم کشان که یابند زن کار یک نشان به جنگ اندر آگند برسان و بسنده نباشد مگر با گروه. برای در استیابوشت سر به خفتان هومان بپوشید بر بر آن چرمه پیل پیکر نشست یعنی اسب هومان نشست درفش سر نامداران به دست یعنی درفش پیران و بیسه چون هومان برادر پیران بود دیگه چون دیدبانان لشکر دور درفش و نشان سپهدار و طور بدیدند زان دیده برخواستند، به شادی خروشیدن آراستند تلایه هیونی برفکند زود به نزدیک پیران به کردار دود که هومان به پیروزی شهر شهریار دمان آمد از مرکز کارزار سبک ویژن در میان سپاه نگون کردند آن درخش سیاه چه آن دیدهبانان ایران سپاه نگون یافتند آن درخش سیاه سوی پهلوان روی برگاشتن یعنی روی به گودرز کردند کردن دیده که نعره برداشتند که پیجن به پیروزی آمد شعر شیر درفش سپه سیه را سراورد زیر سپیجن چنان شاد شد پهلوان یعنی گودرز که بویی برفشاند خواهد روان. این همه از... ست رو گذاشتیدیش اتفاق نیفتاد بود اونو همه افرده بود بله. چند ست گذاشتید؟ یه سفه تقریبا پیشترم که یکی دو صفحه بله بله. بله بله الان روی چند هستیم؟ الان روی پنجا و پنج و دو. بله از اون از پیران از بر از خشم درد خسته پر از آب چشم باز می‌بینید که این صدای بلق زدن شما باید این دو صفحه سه صفحه چهار صفحه شیش هفت متاسفم که بدان صفحات زیاد میشه من میخواستم خواهش کنم شیر قبلی رو با این شکل حالا این دفعه این کاری کردید خیلی برای من جالب بود این اتفاق نیفت دارم مشخص میشود حالا ببینید این جاست با من پیشناد خوبیه من خودم بارها این رو در جلسات ها شانمانی بنیاد این هم کار میکنم میگم این مثلا هفت صف گذاشتیم گذشتیم ببینید که دو سخن به همده پیوست است الان این سخن اینه که پیران خشمین شد از دو پیران برا خشم دل از درد خسته پر از آب چشم یکی نام فرمود پستا دویر نویست سوی پهلمان دلپذیر خشبی شد و فرموز که نامی یه نامه بمیست. نامه پیران بیسه به گود از یکی نامه فرموز پس تا دبیر نویسد توی فهلوان دلپذیر مگر کز میان دروی سپاه جهاندار بردارد کی کینگاه. یعنی مخصوص دروی سپاه این دو کشور ایران و توران. اگر تو که گودرزیان خواستی که گیتی به کین بیا راستی. زمهر و خرد روگ برتافتی کنون آنچه جستی همه یافتی. نگه کن که ایران و توران و سوار چه مایه تبه شد بدین کارزار. به کینجستن مرده ای ناپدید سر زندگان چند خواهی برید. گه خواهمد که بخشایی زه ترا، زکیینجستن آسایش آید ترا. ولیدون که پیکار و خون ریختن بدین راز گه با مناویختن، بدین سان همی جنگی شیران کنی همه از په شهر ایران کنی بگو تا من اکنون دست در شطاب نوندی فرستن به افراسی ها بدان تا بفرمایدم تا زمین ببخشیم و پس در کین. یعنی مقصود این که سپاه ما آشتی بکنیم و اون زمینی که از آن ایران هست که در تصرف ماست اونها رو ببخشیم و این کین برنبردیده بشه خدا دلم نمیاد یعنی دو هفته است استاد استاد جانه تازه دستر بولنشن هفته قبل که خیلی حالشون بدتر بود. اما این هفته حالشون خدا رو بهتر هست اما گلوشون هنوز آزورده است و دلم نمیاد استاد جانه ایدی نخونم پیامک کارو شما فازده بودن کم، کمترین حدیه که میتونیم نصار ایران و ایران زمین و ایرانیان بکنیم جانمونه حالا گلو که چیزی میتونیم پنجرتون جا شاوپوسی پاره بله گفتار فردوسی با امید خدا هزاران درود بر استاد جنیلی آیا شاهنامه همون تاریخ است که در غالب داستان در آمده که هر فرد هر کس در هر مکان نماینده اقوام و دوران ها و حوادث و شاهان است تا در تا عوام هم آن را بیاموزند و تاریخ ت... و تاریخ تحریف نشود درود بر هدایتی زریر از اویس فیروزآباد آباد پارس شاد باشید فیروز پارس در نام زریر ما داریم خب زریر ایرانس پاخوت بود در زمان گوشت این یکی از نام های که کمتر گذاشته می من بسیار شادمان شدم درست درسترین تاریخ جهانه یعنی هیچ تاریخی رو در جهان نداریم که بندز شاهنامه اولا درست باشه سانیان گستری به این عظمت رو بر خودش گرفته باشه شاهنامه از پیدایی جان در جهان سخن میگه با نام کیو کیومرس کیو در زبان پهلاوی بوده گایوک مرد در زبان عمستایی که که که زبان آریای جهان هست گای مرتا. گای مرتا یعنی جان میرا به این ترتیب ما در پدید آمدن جان در جهان در شاهنامه اومده و هیچ کتابی نیست که در جهان به این گستره باشه از وقتی که اروپایون برای خودتون یه تاریخی پدید آوردن که همزمان با پیدایی یونان بود تقریبا 2800 سال پیش اونا از اون سو به این سو رو تاریخ خطاب می‌کنن. بیشتر از اون هر اتفاق افتاده میگن پیش از تاریخ. اگر اون چیزی که اتفاق افتاده، در جهان اتفاق افتاده، چرا باید پیش از تاریخ باشه؟ اگر روی داده، ما با دونه رو در تاریخ داشته باشیم. در تاریخ اروپایی نیست. اون همه در تاریخ ایران هست. بزرگترین پدیده‌های تا حقیقت یه های دانش بشری در همون بخش هایی کنه میکن اصطوره ارشانامه و نهچنین نیست تاریخ و بعد میرسه دیگه کم کم به تیره های ایرانی و تروانی اینا نام ها کدوم نام یه است مثلا رستم در داستان ایران نماد نیروی سیستانه به همین دلیل شما میرین در بعضی جنگ ها به همون پهلوان رستم نیست حضور نداره این اون زمانیست که سی نیرو نداشته در بسیار جاهای دیگه رستم حضور داره همینطور هر کدوم از نام نام یک تیر است که اینا رو بیاری از دان که هر کدوم یک پهلوان دارن که به نام پهل... پهلوان به نام اون تیر است و بیاری از دانی را من در کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان. چاپ کردم سی سال پیش و اکنون به صورت گسترده تر در داستان ایران آماده چاپ هست به دست ایرانیان خواهد رسید. با امید خدا در این کتاب من آرزو دارم من آرزو دارم که در این امید خدا. با. با درود به استاد جنیدی و آقای چرا در چند سده اخیر زبان پارسی پویاگی کافی را نداشته است؟ رسیانی برای این باورند که دستور زبان پارسی باید اصلاح شود. نظر شما چیست است استاد؟ شاد باشید. پیروز باشید. در چند سده اخیر که شما می‌فرمایید بنده می‌خوام بگم که این خلاف واقعیته برای که تا مثلا 100 سال پیش پیرامون 100 سال پیش زبان رسمی شفقاره هند همش فارسی بود و به انگلیس و متاسفانه به دستور گاندی این زبان از اون پهن بر بربست. اگر اکنون هندوستان داره یک میلیار جمعیتی شما باید بدونید که یک میلیارد نفر رو محروم کردن از زبان فارسی کوهان دستور زبان فارسی جهان در چین نوشته شده شما باید با خودتون بسنجید که چین چه نیازی داشت که در اونجا دستور زبان فارسی نوشته بشه بعد کشورهای ایرانی نژاد مثل پاکستان و افغانستان و معرف که حالا نامش ترکمانستان گذاشتند و تاجکستان و سماغند و بخارا و ترمز و تاشکند از اونسو آزربایجان و گرامی و و تاتنشین های شمال مازند آزربایجان از این سو تا قسطنطنیه و تا استانبول همه زبان فارسی سبب میکردن نخستین دستگاه چاپ زبان فارسی در استانبول به پا خواست نخستین روزنامه ها در اونجا و در قاهره بوده قاهره به استانبول من زبان و فارسی بود ما در قاهره کسی سید داریم به نام عبدالباهو اعظم روانشرد که شاهنامه بونداری رو ترد یعنی ویرایش کرد و در قاهره به چاپ رسوند یکی از معتبرترین نسخه های شاهنامه جهان شاهنامه بونداری که در سال 620 هجری به دست بونداری اصفهانی از فارسی ترجمه شد به عربی. مگر من اینی که چون دید که مغولان میان و کتاب ها رو میسوزند، شاید ما به این ترتیب نجات بدیم. و این یکی از بهترین نمونه های موجود در جهانی هایی که در کار ویرایش شاهنامه منم، البته خیلی ازش استفاده کردم و دیگرانم همطور چاپون بوسکو و خالق مطلق همطور از او استفاده کردن. این در قاهره این کار شد و این کتاب ها و اینا در قاهره نوشته میشود. ما در یوگوسلاوی شخصی داریم به نام سودی که مصنبی مولوی رو تفسیر کرد در 24 صفحه کتاب در قطع رحلی 24 جل 24 جل ببخشید در قطع رحلی یوگستوی چه نیازی داشت که شخصی نام فارسی داشته شد به نام سودی و اون وقت این کتاب نوشته بشه اگر خونده نمیشد در یوگستوی بنابراین شما باید ببینید که نخستین زبان جهانی بینون الملل در جهان زبان فارسی بوده کی زمانی که ما قدرت نظامی و نیروی کشوری نداشتیم یعنی زمان فرماندهی غزنویان سلجوقیان خوارزمیان هم طور بعد مغول هم طور بعد از مغول خوب اتابکون که به،, به ما کاری نداشتن یعنی با فرهنگ ما بیگانه بودن بعد از اونها که صوفی اومدن که به نظری دیگه نداشتن به همین دلیل که تمام بزرگان فرهنگ ما حرکت کردن رفتن به هندوستان در اونجا کارای خودشونو کردن و بعد از صفویه قاجاری که اصلا غیر ایرانی بودن اما شما ببینید که نیروی زبان فارسی کجا بود که جهان رو گرفته بود موقعی که نمایندگان واتیکان رفتن به برای تحریک مغولان برای اینکه مرتبا در جبهه شرقی ایران جنگ باشه نامه ای که امراء مغول نوشتن به واتیکان به خط زبان فارسی بوده خلاف برداشت شما رسیدید زبان فارسی با استعمار با در حقیقت بزرگترین جنایت فرهنگی جهان که به دست انگلیس انجام شد در همین تقریباً یک سال، هشتاد نبت سال از از صحنه رخ ببسته. البته من امید دارم به دلیل این که خلاف گفته کسانی که میگن دستور زبان فارسی صحیح ترین، درست ترین، دستور زبان جهانه و هیچ فعل یا هیچ در حقیقت دستور بیقاده در اون نیست در حالی که در تمام در زبان اروپایی بیقاده فراغان داریم بله. بله ما بهترین زبان دانشی جهان رو داریم که زبان فارسی باشه از این بابت نترسید از این بابت برنجید که روباه پیر بر سر این زبان چه آورد در طی یک سال که در تمام این کشورها ایران نیجاد یا هندوستان یا چین این زبان رو به طور کلی رخت بستند و این به این ترتیب در آوردن نترسید ما فرزندان فردوسی هستیم امید هست که روزی زبان فردوسی با جهانی بشه خدا خدानگهدارتون باشه من اجازه بدید کنت پیام بخونم فقط کوتاه پاسخ بدید حد کلا اگر میشه شما چطور فکر میکنید من به این ما خودم گفتم خدمتتون سوالات خیلی خوب هستش و باید بیشتر صحبت کرد اما وسیه خواهشه درخواسته با درود به استاد جنیدی فقط استاد بیش از من ایران را دوست دارند، من پهلوی من را خوشنویسی می کنم ولی خواندن آن را نمیدانم. اما حرفهای استاد را درک می کنم، افسوس که شاهنامه ندارم و معلولیت اجازه نمی دهد ایران را ببینم، ایران و استاد جاوید باشند. زریر بازم این هم همون زریر مزاره این هزیز فیروز و دو دو بگمه که زریر بوده این ببان دارم که این فرزند ایران نابینا باشه بس. چون زریر اگر بازاد باشه به زبان عربی نابینا ام. اگر ایشون نابینا نیست و علت ای داره نشانی خودشونو به بنیاد نشور بدن مبارشون یه دوره شانان میفرستیم و بعد این سیدی های آموزش زبان پرلوی هم هست اونا را هم اگر میتونن ببینن ببینن و خط پرلویز رو دانسته خوش نمیسی کنن و شاد باشن پرمه اومده گفتن که تلفن بنیاد نیشابور رو بدین میخوان هم بدونن هم ارتباط برقرار کنن و در کلاس های شما هم شرکت کنن تلفن بنیاد نیشابور هشتاد 96 هشت نوود یه بار دیگه اررز کنم هشتاد و هشت نود این تلفن بارده نش هست تلفن برنامه ما دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج بیست و بیست، هشتاد و پنج بیست و بیست، هشتاد و هشت دو و شماره پیامک سی هزار و, پنجا و هشت هزار و پنجا و هشت. یادم رفخدم خدمتون میگم پایگاه اطلارسانی ما. www.radiofarhang.ir هست. از طریق که از طریق تلویزیون هم یعنی از طریق ماهواره هم عزیزانی که اقوامشون خارج از کشور هستند فارسی زبانانی که هستند و دوست دارن های رادیو فرهنگ رو بشنوند و برنامه ما ببیجه برنامه ما پنجره‌های رو به ماهتاب رو بشنونن میتونن از طریق ماهواره هاتبرد به این عزیزان بگن که در ایران هستن صدای ما رو میشنونن محبایی هاتلیت یه بخش داره یعنی دو بخش داره تصویر تصویر که صدا. اون بخشی که صدا هستش رادیو فرهنگ رو پیدا میکنند و برنامه ما رو بشنود خب ادامه داستان استاد بله اگر بیاد داشتوشی درنامه نمیش که به گوتامان اکنون همان در شتاب نبندی فرستن به افراسیاب بدان تا بفرماویدم تا زمین ببخشیم و پس درنوردی کی؟ به پیمان کنم پیش تو که این پس نباشم بدندیش تو یعنی دشمن تو بدانی که ما راستی خواستیم به مهر و وفا دل بیا راستیم سوی شاه توران فرستم خبر که ما را راز کینه بپیچید سر همیدون تو نزدیک خسره و به مهر یکی ببین ویست به ما چهر نباید که از این خوب گفتار من به سستی گمانی برد انجمن یعنی ایرانیان فکر که من شکست خوردم مرا گنج و هم کام از آن تو بیش به مردانگی نام از آن تو بیش ولی بگین بگیم کین انگی به بیداد هر جای خون ریختن بسوزد همی بر سپه بر دلم بخوشم که کین از میان بگسلم سدیگر که از کردگار جهان بترسم همی آشکار و نهان اگر سر به پیچی گفتار من نجوی همه جرف کردار من یعنی به جرفی نگاه نکنی و کردار من گذین کنچ گردان و ایران سران کسی که را آید با گردگران همیدون من از لشکر خیش مرد گزینم چه باید زبخر نبرد همه یک به دیگر فراز آوریم سران را ز سر سوی گاز آوریم ز سر یعنی دوباره در خلاستان رو میگن اثر و در یک یکی دونست بیشتر تیران هم میگفتن ما میگفتیم ادستر بچه ها بیشتر هم میگفتن بله تیرانی تهران... سوار بل. میکردن ولی بله زبان تیرانی پای مال شد با این مهاجرتایی که انجام گرفتیگه بل. بله اه... خب با... یک به دیگر پراز آبریم سران راز سر سوی گاز آبریم همیدون من و تو به آوردگاه بگردیم یک با دیگر بی سپا مگر بی گناهان ریختن آسای و آسایش هایم زاویختن کسی کش گناهکار داری همی بر زوبردلازار داری همی و پیش تو آورم به روز نبرد به باید پیمان یکی نیز کرد تو پیمان بکنی اونها که گناهکار میدونی من میارم باهاشون بجنگیم نه که اونها رو کشته بخوای و اسید به طرف تو بفرستیم به پیمان یکی نیز کرد ببخش <تصفيق> که بر ما تو گرده آسیابی بخون شود بخت گردان توران نگون نیازوری از بون صفوخ مرا از بون در زبان پهلوی بود هچ بون یعنی اصلا من دوست دیگه در سی میگن اصلا به کار برده نمیشه از بون نیازوری از بون این بون ریشه بون یعنی ریشه اصله من ریشه یعنی ترجمه از بون بله مرا نسوزی پرو بونو گاه مرا گذرشان دهی تا به توران شدند کمین را نسازی بریشان کمند یعنی کمین نکنی که اونها کمندی بشه برای گرفتار شدن اونها و کشیشدن اونها اگر من شوم بر تو پیروزگر دهد مرمرا اخبر نیک بر نسازم برای ایرانیان بر کمین نگیریم خشم و نجوییم کیم ولیدون که زینسون نجویی نبرد، دگرگونه خواهی همی کار کرد به انبوه جویی همی کارزار زارد، سپه را سر, و سر به سر به هر هران خون که به کین ریخته، تو باشی بدان گیتی آبیخته در نزد خداوند تو گنهکار استی پسر بود مرو سر انجمن یکی نام روین روین تن به دو گفت نزدیک گودرز شو، گوی حشیار و پاسخ شنه یا آمد خرند به روشن روان دمان تا سراپرده پهلوان چون نامه به گودرز برخواندند، همه نامداران فروماندند پاسخ نامه ویسه از گودرز چون یک هفته بگذشت هشتون پگاه نویسنده را خواند سالار شاه بفرمود تا نامه پاسخ نویش درختی به نویی به کینه بکشت یعنی یک درخت کینی تازه کاشته شد که برخوندم این نامه را سر به سر شنیدم زی گفتار تو در به در در یعنی فصل فصل باب یعنی تمام فصل به فصل این نامه را خوندم رسانید رویین بر ما پیام یکا یک همه هرچه بردی تو نام ولی شگفت آقایب از کار تو مرا این چنین چهر گفتار تو کسی را که از بون نباشد خراب گمون بر تو بر مهربانی ولد مهربانی در پیروی از کیش مهر یعنی پیمانداری و راستی شور زمینی که از دور آب نموایت چتابت بر رو آفتاب این سراب رو نمیده نمیتون شما سراب دیدی تو بیاون از دور زنه که آب نشون میده میگه که این گفتار تو مانند اون آب نشون از آب یکی روی شور زمینه تو راست نمیگی این سخنان با دل تو با اندیشه تو یکی نیست دوباره میخونم اینو دبا. کسی را که از بون نباشد خرد گمان بر تو بر مهربانی برد چو شور زمینی که از دو آب نموید چو بر او آفتاب ولی که نگاه فریب است و بند که هنگام و گرز است و تیغ و کمند نخوستان که گفتی ببینی اون در به در که گفت در یکی یعنی بخش به بخش اینا رو یکی یکی بخش به بخش پاسخ میده نخوستان گفتی من از مهر نیز زیزدان و از گردش خیز نخواهم که آید مرا پیش چنگ درم گشت از این کار بیداد تنگ دلت بازبان آشنایی نداشت بدان گه که این گفته بر لب گذاشتنی این گفتار رو بر لب گذارند یعنی مهر و پیمان و گفتی درست نبود یعنی دلت با زبانه یکی نبود اگر داد بودی به دلتن در اون تو را پیش دستی نبودی بخون تو تو این جنگ را آغاز کردی نخستین که آمد به پیش تو گیو اگر به خاطر داشتید گیو رو با ده پهلمان ایرانی فرستاد به نزد پیران و پیران و تورانیان در گفتار شکست خوردن و ایرانیان در گفتار پیروز شدن چون پیروز شدن شبانه پیران یک نوندی به سوی افراسی فرستاد که ما باید جنگ بکنیم و سپا بفرست درست بلک شد خستین که آمد به پیش تو گیو و زیران سب مردان نیو تو کردی همه جنگ دست پیش سفر را تو برکندی از جای خیش، خرد ارپس ها اومد تو پیش آمدی، به فرجام آرام بیش آمدی، بیش یعنی درد و رنج. این واژه در پهلوی هم بیش هست، در عویستو بوده بعیش یعنی درد و رنج که من یک بار شکافتم ولی حالا دوباره میگم، بعیش یعنی درد و رنج و از ز یعنی زدن و میان بردن درد در و رنج. این واژه به عشرزه در عمستایی در پهلاوی شد که در ارمنی شد بجیشک در نوشته های تا قرن پنیششون اومده و حالا در زبان فارسی پزشک گفته میشه پزشک در زبان فارسی معنی داره یعنی کسی یعنی که در, در, در, در رنج رو میزنه از بین میبره میگه به فرجام آرام بهش آمدی تو آرامش دادی ولی در پایان در در رنج آوردی با خودت که از پس آمد تو پیش آمدینی هیچگاه گام همراه با خرد نبود یعنی که خرد از دنبال بود تو پیش بودی یا خرد از پیش بود تو دنبال بودی همراه و همگام با خرد نبودی و به فرجام آرام بهش آمدی ولی که سرشت بد و خوی بد تو را نگذر آمد برای خرد بدی خود بدان تخمه در گوهر است به بد کردن آن تخمه اندر است. شنیدی که بر ایرج نیک بخت چه آمد زتوب از پی تاج و تخت و افراسی آمد آن خوبی بد از آن نامداران اندک خرد به کابوس کی کرد خود آنچه کرد برای از ایران آباد گرد از آن پس به کین سیاه باز فکندین چنین کینه نو دراز نیامد آمد به را تورا داد یاد؟ اون موقعی که افراسلوی کاران میکرد یاده نیموند که داد چی هست یعنی دادگری و عدل چی هست ده ده ده. که او بیگونه جان شیرین بداد یعنی سیاه بخش چمایه بزرگان که از سخت و گاه از ایران شدند در, در این کین تبا دو دیگر یعنی باب دفن بخش دفن در دفن دو دیگر که گفتی که با پیر سر به خون ریختن کس نبدد کمر بدان ای جهان دیده پرفریب به هر کار دیده فراز و نشیب که یزدان مراغ زندگانی دراز بدان داد با بخت کردن فراز که از شهر توران به روز نبرد کین برارم بخورشی گرد سه دیگر که گفتی یزدان پاک نبینم به دلتن درون بیم و باک ندانی که از این خیر خون ریختن گرفتار گردد به فرجام تن من اکنون به دین خوب گفتار تو اگر بازگردم ز پیکار تو به هنگام و پرسشت من کردگار بپرسد از این چو پرسد البته من درست کردم چو پرسد از این گردش روزگار که سالاری و گنج و مردانگی ترا دادم و روز و زور و فرزانگی به کین سیاوش کمربر کمر برمیان نبستی چرا پیش ایرانیان؟ ز پاسخ به پیش جهان آفرین چه گویم؟ چرا بازگشتم ز کار سیاوش چهارم سخون که افکندیه پیر سالار بون چه پیمان شکستن؟ چه کین ساختن؟ همیشه به سوی بدی تاختن یا به سوی کجی تاختن؟ تو آورم چون کنم آشتی که نیکی سراسر بد انگشتی تو میگی آشتی بکنی ولی در زمان خودش این آشتی ها نبود این نیکی ها نبود جنگ بود تباهی بود ویرانی بود به پنجم که گفتی که پیمان کنم در توران سران را گروگان کنم به پیمان مرا با تو گفتار نیست پیمان یعنی همون مهر یعنی راستی همون چیزی که در کیش اون زمان ایران و توران بوده یعنی باور ایرانیان کیشمه بوده تورانیان هم با همین باور رفته بوده اروپای هایم هم البته همینطور یعنی آثار کیشمه در اروپا بسیار پیدا شده ولی بعضی که مسیحیت رو پذیفتن کم کم کیشمه فراما شده جا. به پیمان مرا با تو گفتار نیست خرد را روانت خلیدار نیست یعنی روانتو خلیدار خلیدار خلید نیست یعنی کارهایی میکنی دور از خلیده به سوگ به سوگند تو شد سیاوش به باد به گفتار بر تو کسی ایمن اگر بیاد بیارید سیاوش وقتی که میخواست بره از بگذره بگذاره پیران بیارید گفت نه نکن این کار نکن افراسیات تو رو دوست داره مثل پسر خواهی بود بر او و من خودم اینجا سوار دارم در چند هزار سوار دارم دار. بیانه بیانه نه نباید از اینجا برید نه. همینجا به مون مسئول اینه داره میگه سیاوش به پیمان تو شد به باد. به گفتار بر تو کسی من مباد.